بسم الله الرحمن به نام خداوند بی امدازم فرابان نهایت بارشد از تای ابو لاحب یعنی پدر های آتش خشک شود و خود او هم حلاک شد مال او و دست رنجش از وی تباهی و عذاب را دفع نکرد به زودی به آتش شغلوری داخل می شود و همسرش نیز آن زنی که پشته هیزم را با دوش می در گردن او که به زیورها مزین شده است ریسمانی از لیف خورما حلق زده است